چت باشه. مبارک جفتمون باشه. اون سدانگه باشه پدرام تو می‌خره. ان شاء الله. ان آجى، اوزورم، شتمت شکر کُنَم. سر سنگ تمون گوزشتی، ما هم جبران کُنَم، بخاطر. آجاتو ف. اوروز رسیدُ خُنَم. نعم. خوسم می یم یومد چی و چرا و اینا؟ سر کلام تری. اختلاف سلیقه‌ای بود، گوریچچش به دشمنوا شد. آها، رفع شد. آتفا هم که چهار تا پادر آداتو گوشه داراست اختلاف داداشم رسیم داداشون به کلان تری آتفا هم بچه هست دیگه تا شوار نکنه بچه که از حنیف دروب بشنره یه چیزی از نمیدونم چیه نمیگم بگو که بگی پیانت کردی به داداشت که لابد گفته با عطفه نگو ولی تایش خودم در میارم بعل برونت هم همین روزارو میناسم tootavate nõrde پس ماجره بالا گرفته چه ماجره تو بگو که میگی دوتا بده Ja nii on sa peheir. Peheir, نمی که بگی چی شده یا سر چی با خوان خاندادش بگو مگو کردیم میگم به گوش بگیر اگه غربشه وسط دوایی شما دو دوتا بیافتم تو صلح برقرار کنم برقرار می ولی بعد صلح حال روزتون با هم دیگه دیگه مثل قبلش نمی شه. وقتی هم نشه خاله رو شاد کردین تو از خالت چی میدونی؟ نمیخوام بدونم ولی میخوام اونا بدونن سه تا داداش دارم که این مادشیر بالا سرشونم حالا اگه اونا بخوان این داداشارو به هم بریزن مادشیر گازشون میگیره اگه چابش به هم بریزه گازش میگیره حنیف به هم بریزه گازش میگیره تو به هم بریزی؟ اجلتا ما رو گاز نگیر. هم بریزه. حالا از سر راه دانشگاه آمدم چی شده چیدی شب بهش گفتی که دو تا با هم دیگه اوقات تلخی کردم که اب از یه قرص میگه دو تا بده هم من هستم دو روزا که آرازو ندیدم بگیر بگیر دیگه بگیر تا باید بگم مگه کریم بوستان رضایت نداده مگه دین گرد نرد نزاشه که بیایسم تا آراز مگه نگفته راضی از ده دل گفته یا حنیف داره دروق این حرف رو به من میزنه چای داره گفته کریم بوستان گفته بله خالشی اونم راضیه خب پس انگوشتا چرا مشته هنوز بدی چی آراز هیچی تو بدی چیه هیچی هیچی عین دسته گل میمونی باشالله رو دربستی که با کریم بوسان داشته قبول قبول تا وقتی که نگفته بود راضیه. راضیه پس بسم الله برام چایی بیارم نقل بیار نمیشه ها که خانم نمیشه سر چیه سر همین اختلاف مالی حق با چاوشه خب مشکل همینه چون اونا هم میگن حق با ماست جلوی آراز بگن نگاش رو میکنه معلومی که نه داداش به داداش بنده اصلا واسه چی باید بگن حق با چاوشه ولی تو آراز جدا از این حق و نه هیچ که نمیتونه آتیش بیاره محرکه بشه هیچ کس تزمینی نیست حرف حساب تزمینه کی گوش میکنه از کی گوش میکنه از من تلفون رو همین دادم دستت همین النا زعی میزنی به کسو کارت منم زعی میزنم به کسو کارم همین امروز همین الان همه مجمع میشیم خونهشو بزن راضی نیستم گفتم خصه نباشی سلامت باشی من پسر شماام نوکر شماام سوسکه شماام ولی راضی نیستم بابا جان ببین بابا من یه دو کلوم بوت حرف دارم میخوام مادرتینو نفهمند دور هم جمع میشیم حرف میزنیم قول میدیم دعوای من و چاوش وارد زندگی خواهرت نشه میدونی میخوام دل لیلا قرص میشه قرص چی؟ تیک پرونی دور زندگی اونا نداریم نداریم ستار من تا عبد و ده طلبکار و دلخور خوره جا باشم اما نه به قیمت این که آقا, دل دل... آقا. محالمونو بردن دختر داریم میدیم بهشون نتوخم نکشیم یه چیزی هم دستی بدیم لابوت دوست داریم هستی که خودت پسرت خفیف بشن جلو اونا زندگی لیلا جداست پسر من اینو تو کلم فرو کن تو کلم فرو کنم آره تو کلم فرو کنم تو کلم فرو کنم تو کلم بکنم تو کلم چرا این کارم بکنم تو کلم بابا شده دم بزنم از دلمی که ببل شده پدرم شده مادرم بدیم, کلا بدیم دو گازونی برا بدیم اینه اینه این چیزی که میخوایی عشقی داره پوله نه. داره زوره زوره سرطان شده گروه گرفت سرطان بغزمونو خالی کنیم رو خاطر خواهی لیلا آره راضی هستی تو بابا من نوکر لیلام ولی قول بدم دم نزنم از ظلمی که بهمون شده دمه یه دلخوشی من همین دم زننه آره میدونم نزنم میدونم دم بزن دم بزن اما پیش خدا از ظلمه چون ظلم زرم پابر جا بابا آره فیدن که مونده سبر بود انزازه خدا نیست سبر بود کاش زرمون بعد خدا بود همین دیگه حالا که این رو پستش توکل عزیز من نخود زنی من دیگه ای فکر میکنم ساتو اگه بابات بخواد مثل خودش فکر کنی مثل خودش ببینی چی ها ساتو ساتو ساتو نکن چش قربونت دارم باباجون قربونت برم بچی ولی هر جا آراز باشه من نیستم نیستم چون نمیخوام چشم علیکی به شما بگم از زبون من قول بدین که آسیب زندگی لگره بمیرسه فقط صدق سر شما گل برم هر جایی من بودم آراز نباشه حرف چابوشم نموشیم ابجو خانم افضاع کرده بنام کنه لیلا هیچ که نیست اوچ کدوم اون نوشی بخونده داشت بنام افضاع کرده ابجو Kõik on Talam kod võrd Raadi. Aga kui teerks Harald ehde, hei kas odita et OW. worries, Makل ini ensi من به این وصلت راضیم ولی راضی بودن کافی نیست هرچین عروسی لازم داشته باشه هست رضایت جهاز همه چی حرفم هم جهاز نیست ما با حرف مرف کاری نداریم ما وزیفه منو انجام میدیم خونه درندشت داشت هم آموده است حلال باشه یه وجب جهام کافیه جمع شدیم بساطه گوش و کنایه رو جمع کنیم من اعتقادم رو گفتم کنایه نزدم منظورم چشم و درسیری لیلاست کنایه نبود من حرف بزنم البته حرف بزنم بابا جا پرجس بزرگتر داره آب جاتفه داشت حرف میزن خب منم داشتم حرف میزدم داشتم از حلال میگفتم این زندگی که میخوایم برم توش از همین اتاق شروع شده تنه و کنایه ها که الان تموم میشه چابوش پیش ما خب ما تا به هم نگاه نکنیم خاله اینا به هم نگاه نمینداند. که زرد شده رنگت احوالتو از لیلا میپرسم هر روز مردو جلوی هموهی سدن و بلدن زن هم کنار کشیدنشونو نگاه هم نکنی نگاه نمی کنن هم دیگر را حق و ناحق ما به کنار اینا هم دیگره میخوان خواهر بزرگی مادر من بوده ولی اون که مغرور تره شمایی همیشه شمایی خب بهشون بگین تو چه زندگی میخواییم بفرسینشون بیدع با یا با گوشت و کنایه خودت چنه نمیگی؟ شرمنده بعد مرد جای زنش حرف بزنه زن جای مرد نه آقا کریم بوستان؟ من آتفه ما دختر تلعت دختر بدری؟ مهربونتر نگام کنی ناقا کریم بستان نمزورشونو که مهد نگاه کنه داخلی به تو نداره یادم نمیاد با حرف زده باشم همیشه یه نگاه من بست بوده نه بس بوده آبجی آنچه آباش یه نگاه بس بوده نه نه لابجی این دوتا آتیش با من با من آتیش شما کجاست؟ آقا ستار کجاست؟ خاله نگاه نکنی؟ دل لیلا برس نمیشه دل آراز آروم نمیگیره این زندگی جفت و جور نمیشه دنیا دنیا جمع بشه من به چاوش و حلال خور بودن شک ندارم شما اگه دنیا دنیا جمع بشه به حلال خور بودن شوهر چک نداری خب این ایمان منو شما به چه در نمیخوره اگه زندگی این دوتا رو به هم گره نزنه لچبازی خاله مادرم همیشه می میگفت لچباز علفت نس بذار از اول شروع کن رنگم زرده بدحال ستارم هم بدحال کریم بوستان هم. مادر خدا بیا مرزت گفته لجبازم آره لجبازم و در مورد تو چی گفته؟ ها؟ گفته آتفه بیرحمه آتفه متاسبه آتفه مهما شما سلام تو گفتی من بازم از حرف هم بگذاریم باشه از حرف هم میگذاریم ولی از حقمون نمیگذاریم خب شما واسه لیلا آمدین اینجا لیلا میگه منه تو ها شب نفرستین خیلی خب نمیفرستین خودت ها میشه با نیای خونه ما قدمت سر چشمامون دیگه نه حرفی، نه سخنی، نه کنایهی هیچی دیگه نه چاوش داریم نه حنیف داریم، نه من داریم نه کریم بوستان داریم بس اتا حتی... ست پیش پای شماها رفت خالش از من زارتر بود بچم گریه می کرد می گفت حکمونو خوردن تازه باید قولم بدیم که حرفم نزنی اش گفتم هم نباید بزنی مادرم میگه نه عشق بچم رو دیدم بچه هم که بچه داره عشق ظلمیه که بهش رفته تو اینو بدون آراز عشق ستار دامنگیره ها این عرباجش الانه خب پچهش کجاست بچه هت جلوت هفهر میکنه بچهی که بچه داره هفهر میکنه و جا بساش بیده کنم عرف بزنم کجا بزنم میدونم نمیدونی آراز جان من میدونم هگه میدونستی از حقمون نمیگفتی میگفتی ماما جان اصلا میخوام بدونم دوماد آیندن میونش من حلال حرام چجوریه چیه همین اینه میخوام بدونم نمیگفتی بازم من به با حکم آبجیات جیاتف سکوت کردم سکوتم هم بذارید دفاعه این زندگی داداشو تا عشب کنی نمیشه با یه دست پس بزنیم با یه پا پیش اینکه هم بخواین عروسی سر بگیره همین که عین سبزی آبروی داداش منو پاک کنین پسر شما گریه کرده برادر منم به خاطر توحمت ها و پششش نازو کردم توی یه میدون گریه کرده داداش بدل چک را نده. چاوش چاوشه حلال میخوره عین شیر مادرش حالا اگه کسی آبروی داداشت تو با سبزی خوردن اشتباه گرفت تو اشتباه نگیرش به ارواح خاک پدر و مادرمون قسم یک لحظه شک جد... به پدر و مادرمون چرا قسم نخورم به چی شک داری به مرد بودنش به اینکه هممال منو دوتا دادششه اینکه جون میکنه نون حلار میاره تو این خونه به عرفای خاش بیرم بسه حرفا ما هم با اون اینقدر قسم نخور ما قسم هاش با بدری قصه خانده هاشمون نخوریم باز کی بخوریم؟ هاگه حرفا باز عبض شده ما حرف داریم بزنیم ما چون که همیشه حرف داشتی ولی ایشون ایشم قلط زیادی کرده خانده زده پشت دستش دیگه خونده شو شو لا ایرر باباش نمیدونه ها حالا روز برو بیرون برو بیرون امروز tal veeb spielt آراز نمیتونه قسم بابامون سرتو بخوره دیشب بینتون چی گذشته؟ چرا هرچی پیش بودی جوابتو نمیداد چرا به مهدام گفتی وقتی رسیت خبرت کنه نگرانش بودم آمین نگران چی؟ همیشه نگران چی هم دیشب بینتون چی گذشته؟ دوتا داداشتی مابزی بینتون چی گذاشته لیچی با بسرین سر این حجر نرفتنش بحثمون شدنسته بچه ها قرر کرد گذاشت رفت. برای همینجو که الان داری شد نصف شبیه پا شده بدون اجازه رفته پیست گرفتنش همین همین دنبال دستک دنبکی آب جی من برو چاوش میگن پدر کوه برای بچهش من هم برات کوه بودم هم طرفت توی دعوات با کریم بوستان خاله رو گذاشتم کنار نرسته روزی که بفهمم پشت ناحق بودم Kõik kõik kõik, kõik پیداش کن جمش کن پیداش کن که داره بد قاهله ای میشه من زورم زدم نشود حالا تو زورتو بزن چشم عنیف گفتم کلا بیار نری سر بیاری داشته مونه Batışnane Batışnane Batışnane Bu hiç Your mind isn't me. چی شده؟ دسته برم یه باره برم این چی شده؟ بیشه بابا بخوایی تو تو شما سامن بروف کنی بگوشی کجا؟ خونه بخت ندونی کجا هم با او چه اون کجا میره؟ اون صاف برم یه خونه بخت بلیگا تنیزه اشم نو موزمه نرشت بکرتی من دختر بدون جهاز به خونه وقت نمیفرستم تا که این خواهد هم محقم کنی تنها میمانم میدانم میآین با تو آرامم بیترس از تنها هم هام می مانم عاشق تر زخم چون آتش در زیر خاک A. A. 다가 Asma, kas sa